بسم الله الرحمن الرحيم. الاشتغال رصيدين ببحثي. ليش يا شيخ أبو با أستاذ فلان حنده لازم هو. يلا يا شيخ متوالش كلامي. إشتغال في بحث الاشتغال الأمثلة سيبقروا إذا أمثلوا روى سيبرو وردي بيئلة نيست إن الغريبة قابل إن إن الغريبة إن شارطيه هست إن الغريبة قابلتهو فأكرم مسواه إن الغريبة قابلتهو أجر غريب رو ديدي قابلتهو الغريبه قابلتهو ان فالك اومده قابلته مشغوله مشغول به واچه است با ضمیر قابلتهو همین مبرونه وارد این الغريبه قابلتهو خب حالا حالا دقتی داشته باشید این الغریبه این فعل مشغول به زمیر مشغول به چه و نمیتونه اسم مواقع چکار چه کار کنه؟ منصوب کنه این الغریبه پس این فعل غریب با چی منصوبه؟ با فعلی که ماضیه و این چند حالت داره در قاعده توضیح میده این چند حالت داره ان الغریبا قابلته و اکرم و هل المجد يبنيه اونجا غریب بود اینجا مجد هست که بعدش فعل اومده و مشغول بازنیر هست هل المجد يبنيه سواری حميتي كريم على الالات ماضي الأزائمي هل لا كلمة حق تنال أجرها إن ج كلمة حق إناب رجمن اسمها مشغول عنه اسمها هاي شيء مشغول عنه مي مي خل كلمة هلا غريب مع كلمتها بعد شون فعل ومده ولين فعل جايد جي مشغول بيشار تأملتو فإذا الشعوب ينهضها الشعوب ينهضها العمل ينهضها فعله بعد الشعوب ومده ومشغول با زمير هست شعوب هم مشغول انه هست یونهی بله به معنی بله بلند کردن نه هزا هزو بلند شدن اما انه هزا یعنی بلند کردن تحریک کردن بالا بردن کلامو که ان قلتهو این قلتهو دونید این زمیر برمیگرده به چی؟ به همون مشغول من این الغریبه قابلتهو این هو به چی برمیگرده؟ به غریب برمیگرده هل المجد یبنیهی این ها به چی برمیگرده؟ به مجد برمیگرده کلمت حق تنال و اجره ها اینجا تنالو اجر منصوب کرده زمیر رو منصوب نکرده و به این اجر ضمیری متصله اجرها که به کلمه برمیگرده که به چی برمیگرده پس به اون فعل یا زمیری وصله که اون زمیر رو منصوب کرده فعل مشغول با اون زمیره یا یا یعنی اسم ظاهری رو منصوب کرده به مثال سومی که ضمیری به اون اسم ظاهر وصله که به ما گفتیم که به اون مشغول آنه برمیگرده ماننده کلمته حق تنالو اجرها تنال اینجا چی رو منصوب کرده؟ عجر رو چرا که به همین عجر زنیری وصله که به چی برمیگرده؟ به کلمته به چی؟ بله فعلا این نقطه رو دقت کنید که بعدن تو قوائد توضیح میدیم المقالة هل هذبتها؟ المقالة تو اینجا چه هست؟ مشغولانه هست ذمیل هم به مقاله تو برمیترده اما امسله گروه سرفیم ما میتونیم بگیم شرفی که سنهو. میتونیم بگیم شرفی که سنه ولی در اون دو مسال در اون دو گروه از امسله اولی نمیتونستیم باید منصوبشم کردیم ولی منصوب بود اما نبا فعیลی که بعد از خودش اومده بود چون فعلی که بعد از خودش اومده بود خودش منصوب داشت خودش منصوب داشت ولی اینجا میتونیم بگیم شرفو کسون هو اینجا ما هم میبینیم بعدش فعل اومده فعل هم منصوب داره ولی چرا اینجا میتونیم پس بگیم شرفو کسون هو و میتونیم بگیم شرفا کسون هو این سوالاتی هستن که ما برای کنجکاوی ذهن شما مطرح کردیم که در قواعد بساطی اینا رو توضیح میده ا خرافت خرافه میتونیم بگیم آحادیثو خرافه تند صدق میتونیم یعنی معرفیش کنیم مبتدا قرارش بدن و میتونیم منصوبش قرار بدیم به فعل محضوفی. اینجا هر دو تحلیل میتونه جایز بشه دلیلش میگه. المخلصو و مجدو هو میتونیم بگیم میتونیم بگیم المخلصا و حالا لطفی بکنید بیاید روی قواعد دوتا قاعده بسیار مهم آورده القواعد قاعده دویست و سی و چارم الاشتغالو ان يتقدم اسم. اشتغال اینه که اسمی مقدم بیاد اون اسم چی بود؟ الغریب، المجد، کلمتا حق الشعوبو کلاموکا المقالتو شرفکا حدیثا المخلص اینا بودن مس ال اشتغال ان يتقدم اسم اشتغالي نه اسمی مقدم بشه و يتاخر عنه عامل و بعد از اون آملی اومده باشه مثلا در مثال اول ان, ان الغریبه قابلته آمل قابلته توه قابلته تو فعل دیگه عامل عمل میکنه مرفوع و منصوب داره نه و يتاخر عنه عامل بعد از اون اسم چی بیاد؟ آمیلی بیاید مشتغلون ولی اون آمیل مشتغل باش از منصوب کردن اسم ماقبلش مش. عامل مشتغل باشه از چی؟ از منصوب کردن اسم معقل به زمیری که؟ روش خودش اومده پس مشتغل باشه به چی؟ به زمیر مانند مثال یک و دو او نسب المتصلی به یا مانند مثال سوم مشغول باشه و با منصوب کردن اسم ظاهری که به اون زمیر چسبیده مانند تنالو اجره هست کنالو اینجا مشغول به چیه؟ به اجره به به اجره هست که ضمیر به اجره رسید متصله پس اینجا ضمیر به منصوب متصله اینجا ضمیر به چه متصله به اجره که منصوب هست و متصله پس مشتقل ان نسبه به ضمیر اون عامل مشتقل باشه از منصوب کردن اسم ما قبلش به زمیرش یا به منصوب کردن یا مشغول باشه به نس دادن اونی که ضمیر بهش جت متصل هست مانندش اجره ها که تنالو مشتقل هست به به اجر که زمیر به اجر چست متصل هست و به اسم ماقبل برمیدرده به حیث و حالا ادامه تعریف ای که لو تفرغ لهو اگر فعلی، اگر آمله اگر عامل فارغ می شود برای همون اسم ماقبل به حیث و لو تفرغ لهو بگونه که اگر عامل فارغ میشد برای اسم ما قبل او. اون اسم رو چکار میکرد؟ منصوبش میکرد ولی حیف که بیچار جای دیگه مشغوله و یسم سم ما و نامیده میشه این اسم یعنی امون اسمی که در ابتدا اومده و بعدش عامل اومده مشغولا عن. بشتی میگن؟ مشغولن. یعنی مشغولند از او یعنی جای دیگه چند؟ مشغوله بیچه به اونه دیده سی بیایید روی قائده 235 یجبو نصب المشغولی عنه بفعلا محظوف میگه واجب است منصوب شدن مشغول عنه امونی اسمي كه اومده مقدم بله واجب است نصب مشغول عنه به فعل محذوف وجوبا ضافينه كي وجوبا خاص خاص است در قرآن اومده والانهاما خلقها والاناما خلقها خب ا بفعلی که وجوبا هست پس ان وقع دقت کنید چه زمان واجبه که مشغولا منصوب بشه همیشه واجب نبود در امثله گروه سوم معجب نبود اگر یادتون بیاد پس در حالاتی واجبه و در حالاتی واجب نیست میگه يجب و نسب و المشغوله ان بفعلی محضوف و وجوبا بعد ما یختص به دخولی علال افعال دقیق کنید نقطه کنکوریش است. اگر واقع شده بود همین مشغولا بعد از کلمه ای که اون کلمه مخصوص داخل شدن بر افعال بود مانند امثله گروه یک این این هست بر اسمها داخل نمیشه بر چیا داخل میشه بر فعلها موقعی که میگیم این غریبه، ما بدونیم که بعد از این یک فعلی هست چون این آیا بر اسم میاد؟ نمیاد خب اینجا بعد از این کلمه الگری اومده که اسمه چه؟ پس اینجا ما میدونیم که یک حرفی هست یه سخنی هست یک علتی وجود داره پس چیز زمان واجبه که مشغول انه منصوب بشه؟ زمانی که بعد از کلمه اومده بود که اون کلمه مخصوص افعال بود اون کلمه فقط رو میاد مانند این الغریبه مانند حل المجده البته حل اسم عدات استفهام در مواقعی خاص مخصوص فیلا میشند همیشه مخصوص فیلا مثلا موقعی که میگیم این المنزل این المسجد اینجا مخصوص فیل دیگه نیست خب، یا حل کلمه تحضیز هست و بر چی میشه بر فیلا وارد میشه پس نقطه یک اگر با اگر مشغولن بعد از کلمه اومده بود که اون کلمه مختص چی بود مختص فعل بود اونجا واجبه که مشغولن منصوب بشه به فعلی که وجوباً چی هست اون فعلو از کجا میدونیم که فعل چیه از فعل مابعدش فعل مابعدش تفسیرش میکنه این قابل تل غریبه اینجوری میشه در مثال بعدی بله فیلی که ما بعدش اومده فیل ما قبل رو چکار میکنه تفسیرش میکنه فیل ما قبل رو میکنه تفسیر میکنه نه دیگه فیل رو نمیشه ذکر کرد خاطر امین اشتغال بودن بحث اشتغاله در بحث اشتغال دیگه اینجوری هست خب بیایید فلا يجب نصب نصب المشغول عنه بفعل محذوف وجوبا ان وقع اگر واقع شده بود مشغول عنه بعد از که مخصوص مخصوص هست به داخل شدن بر افعال که امثله گروه اول بودند و امثله و و همی مونده و امثله گروه دوم راست چرا واجب بود منصوب بودن سراران من به خاطر این تعمل تو دقت کنید تعمل تو این امثله گروه اول چی بود نصب واجبی بود یک جای نصب واجبیه یک جا رفع واجبیه و یک جا هم چیز رفع, رفع جایز جایزه یک جا نصب مشهول آن هیچ و یک جا رفعش الان مال رفشو ادامه میده و یجب رفع اووو یک بریم جلوتر پس تا اینجا ای کار امسال گروهی بوده اول اما امثله گروه دوم و یجب رفع اووو واجب است مرفوع شدن مشغول عنه این وقعه اگر مشغول عنه واقع شده بود بعد ما یختصو بعد از کلماتی که مختص به دخول علال الاسماء به داخل شدن بر اسمها آقا اگر مشغول عنه بعد از کلمه اومده بود بعد از عداتی اومده بود که اون مختص این بود که فقط بر اسمها میاد خب اینجا ما میدونیم که اینجا ما نباید مشغول انه منصوب کنیم اگر منصوبش کنیم معنیش است که ما یک فعلی معقبلش چکار کرده در نظر گرفتیم یک فعلی معقبلش چه هست؟ بله پس که از الفجائیه معنی که ازا الفجائیه معنی در ازای بیایید تعملتو فا ازا اشعوبو اینجا باید شعوب مرفو باشه باید یعنی جوازی نیست وجوبیه چرا؟ چون بعد ایزا فعل نمیتونه بیاد اذا مختص داخل شدن بر هست؟ بر اسمه هست ایزا مختص داخل شدن بر چی هست؟ اسمه هست ایزای پجایی البته ایزای جان؟ اون ایزا فرق میکنه. اذا ایزا شمسکورت اتفاقا اون داستانش شمسو نائب نه نمیتونیم مبتداش قرار بدیم چرا چون اون ازا ازای فجائیه نیست ازای فجائیه بعدش جمله اسمیه میاد مثلا مثل این که تو میگیم خرجت من المسجد فاذا فا ازا زیدون قائم اه؟ یا فاذا فا ازا حاضر خارج شده ناگهان دیدم که چیه؟ این میگن اضای فجائیه بله پس بعد اضای فجائیه همیشه اسم میاد همیشه چی میاد؟ اون اضا منصوبه و اون اضا داستانش جداست خب بیایید پس اگر مشغول انه بعد از کلماتی اومده بود که اون کلمات مختص داخل شدن بر چی بودند بر اسم ها بودند واجبه که مرفوع بشه مشغول آنه ماننده چی؟ ماننده که ایضا الفجاییه مانند اینکه بعد از ایضای فجاییه اومده باشه او قبل عدات لا عملو ما بعدها فی ما قبلها یا اگر مشغول آنه قبل از عداتی اومده بود ببینید؟ اگر مشغول اند قبل از عداتی اومده بود که ما بعد اون عدات بر ما قبلشون عمل نمیتوننی بکنند رو نام میبره خودش در این حالت هم واجبه که مشغول اند مرسون شد بیایید بیایید روی امثله گروه دوم مثال دوم دو بوم کلامو که او ما دیت؟ او خب کلامو که این قلته فزینه بیونیت کلمه کلاموکا مشغول انه ما هست این قلته ولی فعل بعد از چی اومده؟ بعد از این این از اون عدادی هست که ما بعدش نمیتونه به ما قبلش کنه؟ عمل بکنه موقعی که نتونه به ما قبلش عمل کنه دقت داشته باشی پس نمیتونه تفسیر کنه نمیتونه مفسر باشه ما قبلش باهم یعنی ما نمیتونیم بگم آقا قبل از که قولتا وجود داره و حصفه. چرا؟ چون موقعی که قولتا نتونه به ما قبلش عمل کنه نمیتونه مفسر هم ما قبلش هم باشه. این قائده نه موقعی که نمیتونه به ما قبلش عمل بکنه مثلا در مثال اول ان اگر این قابلت زمیر نداشت به ما قبلش چکار میکرد؟ عمل میکرد غریب ما قبلش بود ولی این نمیتونه به ما قبل از این عمل کنه چرا؟ چون این از اون عداتیه که ما بعدش نمیتونه به ما قبلش چکار کنه؟ عمل کنه چون نمیتونه به ما قبلش عمل کنه پس نمیتونه مفسر ما قبلش ها باشه خوب در المقالتوها الحذبتها داستان هم دقیقا همچنین هست پس در امثله گروه دوم واجب هست که مشغول انه مرفوب باشه واجب است در مثال اولی به خاطر این که شعوب بعد از ایضای اومده و اذا مخصوص این که بر اسما وارد میشه پس ما میدونیم که قبل از شعوب پیلی وجود ندارد در این کلامو که این قلته فدنهو چون ما بعد این نمیتونه به ما قبلش عمل کنه پس نمیتونه مفسره ما قبلش هم باشه و همچنین حل اما بیایید ادامه بحث خب گفته چه کلماتی نمیتونند چه عداتی که ما بعدشون نمیتونه ما قبلشون عمل کنه در بحث آورده عدوات شرط عدوات شرط کلامو که این او، اگر بعد از این کلمه آمله اومده بود نمیتونه با به ما قبلش عمل کنه استاد سهل اینجا هستی؟ عدوات شرط ادوات شد ما مابعد نمیتونه به موقعیتشون کار کنه مام. عمل بکنه. تحضید تحضید تا داره پنج تا الا الله حلا لوما و لولا. اینا اداه چی هستند. ادوات تحضیز هستند. مابعد اینا نمیتونه به موقعیتشون عمل کنه. و مسائل زیادی دیگه ای که در کتب مفصل ذکر شدند. خب بیایید ادامه قائده و یجوز نسبه و رفعه و منصوب بودن و مرتوب بودن مشغولانه فی ماسی و ذالک در غیر از این دو حالت بیایید حالا یکی توتایی ترکیب کنیم تا شرف کسون هو ما میتونیم بگیم شرفو کسون هو چرا ببینید در شرفا که سنهو ما میتونیم فعل محظوفی رو قبلش بیاریم بگیم شرفا که سنه یعنی بگیم شرفا مفعول بهی کاف مضاف اله سنهو خوب فعل امره فاعلش انتا مستتر وجوبا هو هم که مفعول بهی سنهو هست و سنهو مفسر میکنه فعلی رو که ما قبل شرفکه اومده اگر منصوبش کنیم و اگر بیایم بگیم شرفو که سنهو اون موقع راحت میگیم شرفو مبتدا سنهو خبرش ترکیبو که متوجه شدید اما در مثال اینال غریبه اونجا دیگه داستان جداه چون اونجا مشغولا بعد از یک عداتی اومده که بعد از اون عدات اسم نمیتونه بیاد با چه بیاد باید فعل بیاد لیزا ما میگیم بله شرط این, این شرطی هست فعل شرط محزوف هست فعل شرط, شرط, شرط محزوف هست؟ شرط شرط محزوف هست الغریبه مفول همون فعل چیه؟ محزوفه که همون قابلته هست فا هم جواب شرطه فارو میبینید که روش اومده؟ آه؟ بله پس این داستانش به این شکل هست گروه دوم که نه امثل گروه دوم واجب بود که به خاطر مبتدا بودن مشغول آن چی باشه مرفو بشه به خاطر مبتدا بودن چی بشه مرفو بشه چرا چون عداتی بودن که یک یا بعدشون فعل نمیتونست بیاد مختص داخل شدن بر چی بودن یا این که از عداتی بودند که ما بعدشون نمیتونست به ماقبشون چکار کنه آه. عمل انجام بده موقعی که نمیتونست انجام بده نمیتونس پس جمله میشد چی؟ جمله اسمی دیگه جمله شد جمله اسمی که دنبال مبتدا و خبر میگشتیم نه دنبال مفعول و منصوبات پس این بود بحث اشتغال به همین سادگی بله چرا نیست؟ و والأنعام خلقها جاهز يا دياد نحن نهارا نيس ولشما مثلا اصلا خودتو متونو درس كنين بس خيل ساده يه مثلا موقعي كمي يكي زيدان رأيتوه زيدان رأيتو اينجا البته جائز مركور شك نين جائزة چكار شك نين منصوب شك نين متونين بيقين زيدان رأيتوه ومتونين زي ها به خاطر این اینجا مشغول اند نه بعد از اون عداتی اومده بود که مختص داخل شدن بر اقعال بودن و نه بر رعی توه اگر بگیم من دیده به چه فرق میتونیم بگیم زیدن رعی توه میتونیم بگیم زیدن رعی توه فرقی ندار درستا مشکلی نداره مهم اینه که منصوب براش تو رسکن بله؟ اگر نصبش کنیم برا بر فیل یک ما قبلش حصل شده بله اگر نسبش کنیم بنا بر فیلی هست که ماقبش چه شده است؟ هست شده, شده. فیل بعدی تفسیرش میکنه که چیه رعیته هست بله این داره میگه که اون فعل چه هست زیدن ببین مغ... یا رعیته هیچ فرقی نداره یا رعیت بله اینجور ببین زیدن رعیته اگر این او خودش مشغول انه نبود یعنی مشغول به زمیر نبود که خب اون موقع ما معفولش قرار می دادیم برای چی؟ برای رعیته ولی این فعلو نمیتونیم آملش قرار دیم پس ما ناچاریم یه آمل دیگه ماقل رو کنیم؟ که محضوفه در نظر بگیریم ولی اینجا جایزی هست اینجا... باید زمیر باشه که نباشون اون موقع دیگه مشغول انه نبود. اگر مرفوش کنیم برای مبتدا اگر مرفوش کنیم بنابرای مبتدا بله مثلا اینجا شما بیایید در مثال از سیارت رکبتوها نموزه جی رو آورده از سیارت تو اینجا جایزه اینجا ما میتونیم بگیم از سیارتا رکبتوها اون موقع ترکیبش اینجوری میشه محول دهی منصوبه دیگه رکبتوها خب ترکیبش ساده هست و ما میتونیم بگیم سیارتو رکبتوها اون موقع میگیم سیارتو مبتده رکبتوها همیش موشی جمله و خبرش خبر سیارتو میشه متوجودی ولی در مثال ان البستانه ان البستان دخلته فلا تقطف او اینجا بوستان رو دیگه اینطوری مبدا قرار بدین چرا چون اینجا مشغولاً بعد از ان اومده و بعد از این این مختص داخل شدن بر افعاله ان مختص داخل شدن بر چی است بله این شرطیه دیگه این شرطیه که بر اسما وارد میشه اما این مخفف از مشقل داستان جدا این شرطی رو میگن متوجه شدید خوب يا مثلا حلا واجبا لوطنيكا حلا واجبا لوطنيكا ادته ان جاء واجبا باي منسوب بشه چون حلا حلا از اداتي مختصر چه است با افعال از اداتی است که مختص افعال هست. حلا فقط بر افعال داخل میشه جان. جمله ماقاوله چیه؟ الان برات حلش میکنم. الان البستانة إن البستانة مشه حلا واجبا چون حلا بر أفعال واجب مش داخل مشه فص واجبا مفعول به هست نقشش فايركو حصف هست مثل وده تصفيهي إذا كنت كلما بدت ذلة من صاحب تتعتب مثال بعدي الشيرو ما أحلاح هست مبتدا هست ومثالة بعدية هم چه هست مكل وده تصفيه وده عش مشغول أن هست بعدش هم فعل ومده هست اما ودا اینجا جما مفول بها واجب النص نص پس چرا؟ تون متا بر چی وارد میشه؟ بله بهمین امثله تمام امثله رو کاملا توضیح داده است. پس مشغولاً در نیم ساعت وقت برد متاسفانه